داستان یک کشتی پر از نمک. زن و شوهری بودند که یه بچه داشتن. خیلی هم طرفتار آرکانجلو بودن هر سال براش جشن می‌گرفتن. بعد از یه مدتی شوهر مرد و زن با پول کمی که براش مونده بود، هر سال برای آرکانجلو جشن می‌گرفت. تا اینکه یه سال دیگه نمی‌دونه باید چی رو بفروشه تا بتونه این جشن رو برگزار بکنه. رفت پیش پادشاه و بهش گفت علا حضرت میخواین این بچه رو بخرین؟ حتی به دوازده سکه اصلا نه هر چقدر که خودتون میخواین کافیه من بتونم برای آرکانجلو جشن بگیرم پادشاه چند تا سکه به اون زن داد و بچه رو گرفت بعدم با خودش فکر کرد ای بابا این زنه برای جشن آرکانجلو بچه شو میفروشه من که پادشاه هم هیچ کاری براش نمیکنم. به خاطر همین قضیه دستور داد تا یه کلیسای کوچیک بسازند. یه مجسمه یه آرکانجلو هم خرید و براش جشن گرفت. اما بعد از جشن یه پارچه کشید روی مجسمه و کلا فراموشش کرد. پسر بچه اسمش پپی بود. اون تو قصر بزرگ شد و با دختر پادشاه که همسن و سال اون بود بازی می کرد. خلاصه هر روز با هم بزرگ می شدن. تا اینکه وقتی بزرگ شدن عاشق هم شدن. مشاورای پادشاه بهش گفتن اهلا حضرت موضوع از چه قراره؟ نمیخواین که دخترتون زن یه گداگوش نشه. پادشاه گفت خب چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیرونش کنم؟ مشاورا ها گفتن کاری که ما بهتون میگیم انجام بدین اونو با کهنه ترین و درب و داغون ترین کشتی بفرستین دنبال کارو کاسبی؟ دست رو بدیم وسط دریا تنها ولش کنن و اینجوری غرق میشه و خیال هممون راحت میشه. پادشاه از این فکر خیلی خوشش اومد. به پپی گفت ببین پسر جون باید بری دنبال کسب و کار. سه روزم وقت داری تا کشتی رو برای خودت بار بزنی. کپی شب و با این فکر گذرون که چیکار باید بکنه؟ باید یه چیزی باره کشتی کنه که معامله پرسودی باشه. شب اول هیچی به فکرش نرسید. شب دومم هم همین طور. شب سوم حالا فکر نکن و کی فکر بکن. تا اینکه دست به دامن آرکانجلو شد. آرکانجلو ظاهر شد و بهش گفت دل سرد نشو. به پادشاه بگو که نمک بار میکنی پپی فردا کاملا خوشحال و سردمغ بلند شد و رفت پیش پادشاه. پادشاه ازش پرسید خب پپی چی فکر کردی؟ فيام گفت حضرت دستور بدین یه کشتی نمک بر بار بزنن. مشاورای پادشاه از این موضوع خیلی خوشحال شدن. با خودشون گفتن با این محموله کشتی زودتر از قبلش غرق میشه. خلاصه. کشتی حامل نمک به راه افتاد. پشتش هم یه کشتی کوچیک‌تر بستن پپی از ناخدا پرسید اون کشتی کوچیک به چه درد میخوره؟ ناخدام جواب داد خب دیگه اینو دیگه خودم میدونم که به چه دردی میخوره. کشتی به راه افتاد. بعد از یه مدت رسید وسط دریا. ناخدا سوار کشتی کوچیک شد و گفت شب بخی پپی و پپی رو وسط دریا تنها گذاشت. آب توی کشتی رخنه کرده بود. دریام طوفانی شده بود. چیزی نمونده بود که غرق بشه پپی شروع کرد به داد زدن یا مریم مقدس آرکانجلو لطفا کمک هم کنید همون لحظه بلا فاصله یه کشتی که تموم بدنش از طلا بود ظاهر شد تازه آرکانجلو هم روی عرشه کشتی بود براش یه تناب انداخت و پپی کشتیشو با اون تناب بس به کشتی آرکانجلو اون کشتی مثل برق تو دریا میرفت تا اینکه بعد از ساعت ها رسیدم به یه بندر یه نفر از اون طرف بندر از پپی پرسید برای صلح دارین میان یا برای جنگ تپی گفت برای صلح و اونام گذاشتن که پپی و کشتیش کنار ساحل لنگر بگیرن. پادشاه اون سرزمین اراده کرد که پپی و رفیقش رو به غذا دعوت کنه. اونا خبر نداشتند که پادشاه اون کشور استاد آرکانجلوه. آرکانجلو به پپی گفت یادت باشه که تو این مملکت نمیدونن که نمک چیه. پپی هم کیسه نمک با خودش برداشت. سر میز با پادشاه مشغول خوردن شدن. همه ی غذاهاشون مثل کاه بی بود پپی گفت چرا علا حضرت اینجوری غذا میخورن؟ پادشاهم پادشاه هم گفت ماها عادت داریم اینجوری غذا بخوریم اون وقت پپی یکم نمک توی غذای همه مهمونا ریخت بعدش هم به پادشاه گفت علا حضرت حالا امتحان کنین به نظرتون چطوره؟ پادشاه چند تا قاشق دیگه از غذا خورد و گفت خوشمزه است بازم از اینا دارین؟ پیپی گفت یه کشتی پر. پادشاه گفت قیمتش چقدره؟ اونم جواب داد هم هموزن طلا. پادشاه گفت همه رو می هم خیلی راحت همه یه نمکهاشو فروخت. بعد از نهار تمام نمکها رو خالی کردن. تو یه کفه نمک بود و تو کفه دیگرش هم تلا. خلاصه پیپی کشتی رو پر از تلا کرد و بعد از گرفتن همه ی درزای کشتی دوباره به راه افتادن. دختر پادشاه روزا جلوی پنجره وای میستاد و دوربینش رو به سمت افق میگرفت و دریا رو تماشا میکرد منتظر برگشتن پپی میموند و وقتی هم که کشتی پپی رو دید که از دور داره میاد به پدرش گفت پدر پپی برگشته وقتی که کشتی به بندر رسید پپی دست پادشاه و بوسید و بیمعطلی شروع کرد به تخلیه طلهها مشاورای پادشاه حالشون گرفته شده بود به پادشاه گفتن این پسر اینجا چیکار میکنه پادشاهم گفت حالا چیکار میتونم بکنم مشاورام گفتن خب بفرستینش به یه سفر دیگه پادشاه چند روز بعد به پپی گفت که فکر یه محموله دیگه باشه چون که دوباره باید رابی افته پپی دوباره فکر کرد بعدش دوباره از آرکانجرو کمک گرفت و اونو صدا کرد و بهش گفت چیکار باید بکنم آرکانجرو هم بهش گفت یه کشتی گربه بار کن پادشاه برای تهیه اون گربه ها یه اطلاعیه صادر کرد هرکی گربه داره بیاره به قصر پادشاهی و پادشاه همه اونا رو ازشون میخره خلاصه کشتی پر از گربه شد گربه ها میو میو کنان سوار کشتی شدند و کشتی به راه افتاد دوباره کشتی رسید وسط دریا ناخدا دوباره از پپی خداحافظی کرد و سوار کشتی کوچیکش شد و باز هم مثل دفعه قبل کشتی پپی شروع کرد به فرو رفتن و پپی دست به دامن جلو شد کشتی طلا دوباره مثل برق ظاهر شد و اون رو تا بندر ناشناسی همراهی کرد. فرستاده که تو بندر منتظر بود دوباره از اونا پرسید: شما برای صلح اومدین یا جنگ؟ تپی جواب داد: خب معلومه برای صلح. و پادشاه اون سرزمین تپی رو به نهار دعوت کرد. سر میز غذا، کنار هر بشقاب یه جارو بود. پیپی سوال کرد این جاروا به چه دردی میخوره؟ پادشاهم جواب داد حالا خودتون بعدم میفهمین. وقتی میز غذا آماده شد بلا فاصله سرکله یه آلمه موش پیدا شد که روی میز بالاپارین میپردن. میخواستن از توی بوشقابا غذا بخورن. هر کدوم از مهمون ها باید با اون جاروا موشا رو بیرون میکردن. اما فایده ای نداشت. چون دوباره برمیگشتن اونقدر تعدادشون زیاد بود که نمیشد کاری انجام داد. آرکانجلو به پپی گفت در یکی از اون کیسه های گربه که آوردی با خودت باز کن. تپی در کیسه رو باز کرد و چهار تا گربه اومدن بیرون و پریدن وسط. کلک همه اون موشا رو کندن. پادشاه با خوشحالی گفت به به چه های قشنگی. با صدای بلند گفت بازم از اونا داری؟ گفت خب معلومه یه کشتی پر برای قیمتشون گرونه هموزن تلاست. پادشا هم وزن طاس پادشاه گفت: من همه یه اونا رو میخرم. خلاصه. پادشاه همه ی گربه ها رو از پپی خرید. یه کفه ترازو پر بود از گربه و کفه دیگش پر بود از طلا. پپی دوباره کشتیشو تعمیر کرد و این بار هم با بار طلا به راه افتاد وقتی که به بندر رسید، دختر پادشاه از خوشحالی بال درآورده بود. باربرا همه طلاها رو خالی می‌کردن. پادشاه هم مشاوراش حالشون گرفته بود و با تعجب نگاه می‌کردن. مشاورای پادشاه گفتند تا سنشه بازی نشه. بذارید یه هفته استراحت کنه بعد دوباره به راه بیفته. این بار وقتی پپی آرکانجلو رو صدا کرد و بهش گفت بگو که چی باید بار بزنم؟ آرکانجلو بهش گفت گه محمول باغالی باید بار بزنی. وقتی که کشتی پر از باغالی داشت قرق می همون کشتی طلا دوباره ظاهر شد و پپی به اتفاق آرکانجلو توی بندر دیگه پهلو گرفتن پادشاه اون شهر یه ملکه بود. هر دوی اونا رو به نهار دعوت کرد. ملکه بعد از قضا یه دست ورق در آورد و گفت بیا با هم یه دست بازی کنیم و اونام مشغول بازی شدن. ملکه بازی قهاری بود. همه مردایی رو که ته ای زیر زمین زندونی میکرد. اما آرکانجلو نمیذاشت ببازه. ملکه فهمید اگه همینطوری بازی کنه داروندارشو باید ببازه. این بود که اعلام جنگ کرد. قرار ساعت جنگ رو با هم گذاشتن ملکه همه ی به رو کرد و آرکانجلو و پپی هم دو تا آدم دستنها با شمشیراشون حمله رو شروع کردن اما این بار آرکانجلو باد شدیدی به های کرد و چنان گرد و خاکی بلند شد که جلوی چشم همه ی رو تیره و تار کرد پیش که دیگه هیچی نمیدید آرکانجلو به ملکه رسید و سرش رو با شمشیر از تنش جدا کرد. وقتی گرد و خاک خوابید، همه دیدن که ملکه بیچاره سرش از تنش جدا شده. خیلی خوشحال شده بودند چون ملکه ای بود که هیچ هیچکس تحملش نداشت. مردم به آرکانجلو گفتن ما میخوایم شما پادشاهمون بشین. آرکانجرو هم گفت من پادشاه یه جای دیگه هم. برای پادشاهی از بین خودتون یه نفر رو انتخاب کنید. آرکانجلو و پپی رفتن توی زیرزمین تا زندونی رو آزاد کنن. زیرزمین پر بود از آدمایی که زندونی شده بودند و با تناب بسته شده بودن. بعضیاشون هم دیگه از دنیا رفته بودن. پپی از یه کیسه شروع کرد به بیرون ریختن باقاری زندونیا ها با سرعت باقاری رو خوردن. خلاصه، وقتی که شدند آرکانجلو و پپی یه سوپ باقالی هم براشون درست کردن و هر کدوم از اونا بعد خوردن اون سوپ خوشحال و خندون و سرحال به زندگی خودشون برگشتن. تو اون شهر هیشکی باقالی ندیده بود. پپی اونجا هم باقالیاش رو هم وزن طلا فروخت. بعد هم با یه کشتی طلا و سربازهای تحت فرمان خودش به طرف شهرش بادبونهاش رو کشید. وقتی که به بندر شهرش رسید، یه توپ هم برای سلام شلیک کرد. وقتی که کشتی طلا وارد بندر شد، پادشاه به استقبال آرکانجلو و پپی رفت. آرکانجلو موقع نهار به پادشاه گفت: حضرت، شما یه مجسمه دارید که یه بار براش جشن گرفتید و بعدش هم گذاشتید یه گوشه که تارنکبوت به بنده. چرا؟ شاید پول کم دارین؟" پادشاه یهو به خودش اومد و گفت آره پاک یادم رفته بود آرکانجلو گفت پس بریم با هم ببینیمش پادشاه و آرکانجلو رفتن به سمت کلیسای کوچیک سرتاپای مجسمه کپک زده بود و تارنگ کبوت بسته بود آرکانجلو به پادشاه گفت این مجسمه منه و من الی حضرت از شما دلیل این بیحرمتی رو که در حقم کردید میخوام بپرسم پادشاه زانو زد و گفت منو ببخشین. بگین که چیکار میتونم براتون انجام بدم زیباترین جشن رو میتونم براتون بگیرم آرکانجلو پادشاه گفت من نمیخوام که برای من جشن بگیرید شما باید جشن عروسی دخترتون و پپی رو برگزار کنید چون این دوتا جوون باید با هم زندگی کنند و از اون روز به بعد پادشاه جشن عروسی دخترش و پپی رو کرد و اون دوتا جوون با شادی و خوشحالی زندگی خودشون رو شروع کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها